هشتومین حدیث فرمودی رسول الله صلی اللہ علیه و سلم احد احد دو تا با لفظ احد احد و احد احد کجا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم این حرف رو زده و کجا اومده نوکنید خیلی مهمه که انسان بدونه خوصا لفظای متشابهی که اومده ولی معانیش مختلفه احد و احد اینجا شاید خیلی ها مثلا احد احد این حدیث رو بخونن در اصلش أحد أحد هاس شراء دروسه أحد ون أحد ومدى من جاي كه هاي زر رم زر من حبيش يا زعابد الله بن مسعود أول إنسان يك إسلام شنو يظهر كاتن حفنا فار بودن أبو بكر الصديق عمار ومادرج سمية صهيب بلال ومقداد وأخدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنا فار بودن ك إسلام شنو يظهر كاتن بودن أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ك أبو طالب پناهش بود أبو بكر الصديق هم قومش و اما دیگر صحابه شکنجه شدند، پراهنی با اونها رو پوشوندن و زیر زیر آفتاب نگاهشون داشتن، تنها کسی که میگه تو این شکنجه ها، تو حدیث زر رو تنها کسی که تو این شکنجه ها لذت میبرد و درد احساس نمیکرد به خاطر اون ایمانش و ترسش از خدا و اون حس ایمانی که در دانش بود بلال بود خود صحابی میگه عبدالله بن مسعود میگه بعد میگه اونجا این لفظ هی تکرار میکر احد احدی الله احد یک تاس یک تاس احد خب این حدیث سلیم که صحیح واسه ولی خب اینجا در اصل حدیث با این لفظ احد احد کجوا ما حدیث سعد بن مقاص میگه که مره علی نبی صلی الله علیه و آله ادعو با اصبعی میگه رسول الله اسکنار کنارم شد من با دو تا انگوشتم دعا میکردم با اصبعیه بعد میگه با اشاره به سببه با انگوشت سبابه اشاره کرد بعد گفت احد احد یعنی با یک دست دعا بکن یعنی با یک انگشت با یک دست نه با دو دست با دو تا انگشت چون الله یک دست یک همونطور که در تشه خود ما انگشت سبابه را بالا میبریم که بر شیطان خیلی هم سنگینه مثل که بر سر شیطان و همطور رسول آسان هم در قدب جمعه حالاتی داشته برای دعا جای انگشت را بالا میبردن و صحابه دست بالا نیبردن مگر اینکه دعای استسقا و صحابه میگه دست اگر بالا می برد ما بالا میبردیم به خاطر همین نهی از اینکه نه که نهی خلاف سنت بر این که ما در روز جمعه دست بالای چه امام چه معمومش غیر از اینکه دعای بارام باشه و سنت بر خطیب که اگر دعایی کرد با انگشت سبابه اشاره کنه و جایی هم بوده بر من منبر رسول آسان دست ها را تا جایی بالا ببرند که که زیر بغلش هم پیدا می شده و جایی که هم کف دستش رو بزنیم می و پشت دستش رو با آسان که دعای استسقا و دعای باران بوده اینا حالات دعا هست مختلفه یکی از اون حالات های دعا انگشت سباب هست اشاره چه در تشهود چه در غیر تشهود چه در تشهود در تقریر رسول الله هم صلی الله علیه و هست اینجایی که صحابی انگشت دو تا انگشت رو بالا برده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک انگشت و یک انگشت اشاره می کنه میگه احد احد این حدیث اشدهون